های نی بیشنو از نی شکایت میکند و از جدایی ها شکایت می کند تا مرا ببریده از نفیرم مرد و زن به نام پروردگار بزرگ و بی همتا و با درود به دلباختگان جمال حقیقت و دوستداران کمال و فضیلت سخن امروز را آغاز می و با استمداد از دم گرم و انفاس قدسی مولانا دیگر بار چنگ مصنوی را ساز نماییم و از حق یاری و توفیق می جهد بی توفیق جان کندن بود زرزنی کم گرچه صد خرمن بود اساس آفرینش بر پایه هجرت و تحول بنا شده معنا که کلیه موجودات عالم هستی با حرکتی مستمر و مداوم پیوسته از نهان خانه قابلیت و استعداد به مرحله فعل و ظهور می آیند و بی تابانه در مسیر تکامل گام می نهند و به سوی مقصد نهایی خود ره سپارند مولانا در مصنوی شریف این هجرت و حرکت تکاملی وقفه را بدینسان بیان می‌دارد. از جمادی مردم و نامی شدم و نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم این هجرت و حرکت برای کلیه موجودات عالم اجباری و است و هیچ آفریدی را قدرت و توان سرپیچی و تخلف از آن نیست مگر انسان را چرا که او با اعجوبه خلقت و نخبه آفرینش و برگزیده خداوند و جانشین او در پهنه زمین است و قلمرو فرمانرواییش بر مانصب الله جوری سپس مولانا این هجرت اختیاری را به دینگونه شهر میکند حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک و پر بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه در وهم ناید آن شوم پس عدم گردم عدم. چون ارقنون گویدم که راجعون بدون تردید منشه تکامل و ارتقای انسان چه در شعون مادی و چه در امور معنوی هجرت است اما کمال مطلوب در هجرت درونی و تحول باطنی است که تا چنین هجرت و تحولی در ذات آدمی به وقوع نپیوندد و تحقق نپذیرد او هنوز از مرز حیوانیت فراتر نرفته است و مراد از بیست کلیه پیامبران الهی نیز حصول همین هجرت است و آن مهاجرت انسان است از سرزمین خودخواهی ها و تنگ نظری ها و تعصبات جاهلانه به دیار نور و زیبایی و کمال و فضیلت و انسان کلبته افراز بدین مقام مستلزم جهد و کوشش فراوان و در گروه انایت ربانی و فیض الهی است وصول بدین مرتبه والا همگان را به آسانی میسر نیست باید از خداوند آجزانه آن را خواستار شد ای قدیم رازدان ظلمنن در راه تو آجزیم و ممتحن این دل سرگشته را تدبیر بخش بین کمانهای دوتو را تیر بخش جوش کردن خاک و ما جوششیم، جرعی دیگر که بس بیکوششیم ای قدیمه <بره> <هده بره> <هده> <هده> <هده> این دل سرگاشی رو تدبیر بخش این دل سرگاشی رو تدبیر من آبدیات مگر به شهافی در نخست از بدکاران و فاجران بود روزی در بغداد در خانه خیش بزمی آراسته و بسات اشرت و میخارگی گسترده بود مطربان و قوالان به نقمگری مشغول بودند در چنین حالت امام کازم را بر آن مکان گذار افتاد کنیزکی را بر در خانه دید از او پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده کنیز پنداشت که مقصود امام آن است که بشر برده است یا آزاد به پاسخ گفت نه او آزاد و مردی متمکن است امام فرمود آری اگر بنده بود هرگز چنین نمیکرد بیش از درون آواز بشمید بیرون آمد و از کنیزک صورت حال پرسید او را باز گفت بهش را از این سخن شگفت حالتی پدید آمد و در او هجرتی به وقوع پیوست و از این گفتار اتابا میز امام نور آگاهی در آسمان جانش تابیدن آغاز کرد آسیم سر و شتابان با پای برهنه در پی امام دوید و سر صدق و اخلاص سر بر قدم اونهاد جان پشیمان و دردمندش را که در آتش ندامت میزوخت خوشحالتی دست داده بود که هیچ به وحث در نگنجد از این هجرت کار بشر به رسید که از اکابر اولیاء الهی شد و پاس آن موهبت که در برهن پایی به او ارزانی شده بود همه عام را کفش به پای نکرد از این رو به بشر حافی شهرتی یافت آنکه از سمبول او قالی تابی دارد باز با دل شدگان ناز و اتابی دارد جان بیمار من نیست زیرو ای خوشان خسته که از دوست جوابی داره آن که از водه Oh, Nebuchadnezzar. هران کس را که چنین هجرتی دست دهد و چنین حالتی پدید آید، بار سنگین و کمر شکن از دوش جانش برداشته شود و دریچه از نور و زیبایی از جهان قیب به روی دلش اشاده گردد و از قید بیماری قرور و خودبینی و تنگ نظری رهایی یابد. مولانا توصیف این رهایی را چه؟ زیبا و دلنگیز در داستان پشه و سلیمان تصویر فرموده است پشه آمد از حدیغه و از گیاه از سلیمان نبیش و دادخواه کی سلیمان معدلت می بر شیاطین وادمی و پری داد دهما را که بس زاری ما بی نصیب از باغ و گلزاری ما پشهی به نزد سلیمان به تظلم و داد خواهی آمد و بدو گفت ای پیامبر تو که پیشت اجرای عدالت است مرا داده که سخت مورد ستم قرار گرفتم سلیمان پشه را پرسید چه کسی بر تو ستم روا داشته پشه به پاسخ گفت ای پیامبر خدا تو خود از اسرار نهان آگاهی و از ماجرای من با خبر پیش تو حال آوردن نیاز نیست که جان پاک تو سر نهان را به عیان می و به مدد غیب از هر ماجرا با خبر است هر را هست از حوث ها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک هر که باشد ز سینه فتح باب او ز هر ذره ببیند آفتاب پاسبان بنئ آفتاب در بشر واقف ز اسرار خدا در درون جان درایت چون خیال پیششان مکشوف باشد سرها هر کراو هست از حوث ها جان زود بید حضرت و ایمان پا بشاش واقع فسرار خدا یش پشه نزد سلیمان چنین ارز حال آورد که ای دادگر داد از دست باد که از او بر من پیوسته ستم می رود. گفت پشه داد من از دست باد کود و دست ظلم بر ما ما ماز ظلم او به تنگی اندریم لب بسته از او خون می خوریم آنگاه سلیمان پشه را گفت که رسم داوری چنین باشد که هر دو خصم باید در هنگام طرح دعوا حضور یابند من اینک باد را فرا میخوانم تا ماجرا از او باز پرسم چون سلیمان باد را بخواند پشه شتابان راه گریز در پیش گرفت چرا که او را در برابر باد طوان ایستادن نبود بانگ زد آن شه که ای باد سبا پشه آن کرد از ظلمت بیا باد چون بشنید آمد تیز تیز به گرفتن زمان راه گریز آری ای عزیز چون سرسر بنیانکن عشق در جان وزیدن آغاز کند همه امیال و شهوات و خواهش ها را یک از صفحه زمیر آشق از جای برکند حتی خواست و اراده را از او سلب نماید و هیچ چیز را جز عشق بر قلم وجودش فرمان روای نباشد و چون آفتاب جمال جانان از مشرق دل سر سربرزند شخصیت اعتباری و وجود آریت او در زیر عشقی آن چونان برف در آفتاب تموز آب گردد و محبو فانی شد که گفتند آشقان برفند و معشوق آفتاب تافت چون بر برف گردد برف آب بی در هر دلی که سلطان عشق خیم برفراشت، میل و اراده آشق معذور گشت و ملک هستی آشق همه در قبضه تصرف عشق درامد که آشق را جز رضای محبوب مراد و مقصدی نیست و فنا در عشق دوست شدن این بقاست صورت تن برو من کیستم؟ نقش کم ناید چو من باقی استم جان مجرد گشته از قوغای تن میپرد با پر دل نیپای تن مرگ کن اتفاق امت است کابه حیوانی نهان در ظلمت است وقت آن آمد که من اریان شدم جسم بگذارم سراسر جان شدم پروردگارا ای که زمام همه عقل ها و تدبیر ها در قبضی تصرف و اقتدار تو است ای که امر و فرمانت بر سراسر عالم هستی روانه است ما را از استیلای نفس سرکش تاقی رهایی بخش و جان و دل تیره ما را با پرتوی از نور هدایت و تعیید خیش منور و روشن گردان به سان که جز راه رضای تو و جز در طریق خوشنودی تو گان بر نداریم زمان این زمان وقت با امید پیروزی برای شما شماش نمیدان عزیز. تا برمومه آینده خدا نگه.